بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین والصلاف والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آلی اجمعین اما بعد در فترت رو میخوانم ببیندیم آخرین مبحث فترت از دلایل توحید بله مطلب من در روز اینه که فترت دلالت در برسن و توحید ما جلسه گزشته بشت اشاره کردیم حبته گذشته. لیکن الان میخوام بحث و بازش بکنیم. فترتی که خداوند در ما گذاشته خداوند فترت الله التي فتر الناس علیها این فترت دلالت بر وجود خداوند رو داره و دلالت بر سن و توفید توفید روبیت از و استفاد و توفید, توفید الوهیت وقتی که خداوند آدم را به عنوان پدر بشریت پدر بشر کلقت میکنه و فرزندان رو مشخص میکنه فرزندان آدم تا قیام ساعت از فرزندان آدم که ماها هم جز اونها بودیم گواه میگیره و اگه ربو که من بنی آدم من ظهوری هندو ریت هم و اشهد هم الان فو سیم قالو بلا آیا من پروردگار شما نیستم گفتن آره. پس بشریت در اساسشون پاکن از لحاظ اعتقادی فقط به الله اعتقاد دارن الاسه براد بکن بله فبردگاه از همیست ما گفتیم بله پس ما اعتقادمون درباره خداوند اعتقاد پاکی هست ما خداوند، از به عنوان قدرت کل به عنوان سمیع علیم به عنوانی که کاملترینه ورحم الراحمینه هیچ کسی قبول نداریم و این آیه دلالت کلی و مجمل داره بر سنو توحید یعنی ای لازمه ای این که خداوند اقرارمون که خداوند پروردگار لازمه ای اینه که خداوند هم پرسیده بشه از محصفاتش هم باید قبول داشته باشیم چون وقتی که ما قبول داشته باشیم خداوند باید یک رب لازمه ای اینه که باید مساله اعلا هم داشته باشه چرا ما را خلقت کرد؟ چرا ما از ما دواه گرفت؟ عن یک از چه موضوع لازمه این اقرار عملم هست. وقتی که اقرار علمد دو... مثال اقرار یک شخص میگی تو فلان کردی خب میگه بله خب پس توبه‌ی بعد در ازای اون اقرار هم باید باشه و اگر قرار اگر قرار بر این باشه که توبه‌ی نی باشه از اقرار باشه محاسبه‌ای نباشه خب چه حاجتی هست که مثلا من به فرد شخص زیر سوال میبرم تو فلان کردی یا نکردی پس حتما یک معاطبه، یک سرزنش یک توبیخی باید باشه خوش در قضیه که من دارم گواه میگرم از اون طرف. میخوام حد یک یک, یک چیلی هست که میخوام بهش مسئولیتی هست که میخوام واگذار بکنم. پس لازمه اقرار گرفتن از بندگان بر روحبیت اینه که چی؟ تعهد بدن در عمل. اقرار بکنن که عملم بکنن. و دلالت این آیه هم بر اینه که انسان اگر سانم باقی بمونه، کسی نیاد یهودیش رو به طبق و نه که قبلا بیان شد انسان به ذاتش مسلمان تسلیم شده خداوند و خداشناس این به نفس این آیه فرآن اما به اون حدیثی که ما داشتیم ما منورود اللیود علی فتره فبواه و یهابدانه آیه که ما داشتیم بازم این حدیث دلیل بر اینه که انسان خداشناسه چون اگر ما ببینیم این حدیث در ذات خودش میاد ها و ملت‌های منحرف رو ذکر که در عقیده منحرف شده. نصارا اومدن گفتن که چیه عیسی فرزند خداست. منحرف شدن در اساس توحید. یا مثلا مجوز آتش یا مثلا یهود گفتن عزه فرزند خداست یا گفتن ما فرزندان خداییم. بحث انحراف در خود خدا بنده این ها و این های منحرف که از اساس کتاب آسمانی منحرف شدند و فکرتشون عوض شده در از کتاب آسمانی همه این دیانت ها دارن علاقوصا یهودیت و نصرانیت که ما میدونیم مجلسیت درش موندیم و خود از ما اوموی مسلمانی که الانم هم کتاب آسمانی اوموی یکی از طرف هممون الله رو قبول داریم عنوان کل لیکن بعدها این حراف پیش اومده همونطور که حیوانی که به دنیا میاد سالمه از طرف قدومان یک دین این دین عند الله الاسلام و بعد ما آمدیم گوشارو ها چشمارو کندیم و بیرون رو از داخل حدقش. ما گول کردیم خودمونو یا بشریت خودش خودشون به دست خودش و خودشون رو گمراه کردن. پس اساس یکیه و اساس نباید درش انحراف باشه. پس اون فطرت یک ساله و همه ماها مفتولیم بر اقرار بر خداوند لیکن انحرافات بعداً پیش اومده همطور که در ادامه حدیث میاد. کما تنس جل بهیمت تا آخر روا و چیزی که یه روایت رو تایید می‌کنه یعنی تقی حالا این آیه و این حدیث که اصل مبدا اختلافاتی که حاصله بین مرتجله و اشعاری و دیگر فرقها چیزی که ما گفتیم یک انشراح است قلبی به امیده و یک آرامشی به امیده حدیثش در نسب صحیح بخاری و صحیح بخاری و در صحیح مسلم و مجاز روایت ان ابن مالک میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله لاه اهل النار عذابا لکه ما في الأوضی من شيء كنت مفتیم به کسی خدام به کسی که کمپین عذاب رو در جهنم داره میگه؟ آیا اگر به اندازه دنیا ملغ داشته باشی؟ آیا میایی فداش به ف نجاز یافتن از جهنم بکنی؟ قال نعم خص جهنم یهعاری مییه که فقط سعز خداام می بیا که ما هو احون من هذا و انت في صلح به آدم خدام بهش که من کمپازین؟ از تو خواستم وقتی که در کمر آدم بودی. الا تشرک به اون چیزی که دل خواستم الا تشرک کبی. که شرک به من نیاری بحث اولویت خداون الله تشرک بی تا ابدا لا شرک و تو هم نخواستی مگر اینکه مشرک بشی پس خداوند اقرار بر ربوبیت و الوهیت از انسان ها درفته. اقرار بر ربوبیت و الوهیت من از اون آیه و به نشه این حدیثی که ما داریم حدیث قدسی هست که در روایت بخاری و مسلم اومده پس انسان در ذات خودش یک شناختی داره که این شناختش نیازی به نظر و استدلال نداره نظر رسول الله fio هست من معتدله با شعره که انسان باید شک داشته باشه بعد از شک بیاد مثلا نظر رسول الله رو بکنه موجودونه بیرون اومد بحث ابراهیم می کنه ماه ما موجودونه بیرون اومده موجودونه ساخته شده انسان در ذات خودش برای شناخت خداوند نیاز به نظر و نداره فطرتن خدا شناسی فطرتن میتونیم بفهمه نیازمند خدا هست و خدایی باید باشه شاید یک شبهه پیش بیاد. با آنم این اگر فطرت انسان دلالت بر اسلام داشته باشه پس چرا فلسفه، اهل کلام اشعاره و معتدل فطرت رو انکار کردن اساس فطرت بنوان اسلام شناسی چرا انکارش کردن جواب. جواب اصلی اولا کسانی کسان این مسئله انکار کردن که از علوم شرعی بدور بودن از جهمی ها و فلاسفه کسانی که اصلا متأثر به فکر اسلامی نبودن، متأثر به فکر عرسو و سقراط یونان بودن که تمامی این طلف انکار کردن و به بزهمتش هموردن. این اختلاف از اهل اسلام نبوده، از اساسش اسلامی نبوده اختلاف. اختلاف از کجا اومد؟ از غرب اومده، از یونان اومده، از فکر ارسطو و سقراط اومده. مسلمانان اختلاف نداشن در بحث فترت اختلاف شده، بارد شده وارد اسلام شده اختلاف اسلامی نیست اشاعره و معتدره و دیگر فرقه ها متأثر به فکر فلسفه شده دو بومن. خیلی از علوم هست در نفس انسان هست خیلی از اتفاد هست در نفس انسان هست لیکن تا وقتی که موقعیتش جور نیاد جور نشه اون صفت از انسان بروز نمیکنه. انسان نمیتونه اون صفتش بروز نمیده در خودش مثلا بالفرز انسان هایی آلا حسن کسانی که ازرواج کردن بچه کوچک رو خوب میفهمند. یک بچه کوچکی که در خونه هست لازم نیست که کسی ببینه چودونه مثلا بالفرز میتونه به برای کمود مثلا خودش قشنگ برنامه میکنه حالا با اون خدرتی که فرمان درش رو داشته سفل رو میاره یا سبد رو میاره سندلی رو میاره روی هم بالشتایی هم میذاره میری برای اون کمد و اون کبر. برای خودش یک برنامه نیزی میکنه آیا این قبل از انجام گرفتنش نبوده در اون شخص این قدرت بیده درش این صفت این سهم و که چطور بره بالا میتونه بره بالا درش بوده که اومده نقشه بذاره نمیدونم صندلی را بذاره رو بگه هم بره بالا. پس نمیشه گفت چون هنوز پیدا نشده یا هنوز اون چیزو در خودش نشرافه یا انجام نگرفته در نفسش نیست. مثلا نمیشه گفت این تپ نمیتونه بره بالا. نمیتونه تشخیص بده که آیا میتونه بره بالا یا نه. دو تا روش بیشتر ولی میتونه قشنگ از پنجره هم بپره بیرون. یا مثلا از دون مثال هایی که ما میتونیم بزنیم یک سری صفات اختیاری هست در انسان. مثلا خود مرکلا جامعه شاخه ای مذهبی بحث نیت کردن برای برای بوزو گرفتن یا برای نماد نیت در قلبه نیت قصد و درست؟ نیت کردن قصد و ارادت. خب اساس فتحتم همینه من قصد کردن فرانکار رو انجام بدن قصد کردن فرانکار رو انجام نده و این چیزی که ثابت مقابل در سر لیکن را چی شده؟ این سفتی که در نقص انسان هست و انسان باید بدونه فکر میکنه که باید تلن خودم بهش داشته باشه این نیت که خسیه هست قلبی هست برای نماز خونده فکر میکنه که باید باید با زبانش هم بگه تا این که اون مطلب قلبیش حاصل بشه فطرتی که در نفس انسانه هست به نطخ نداره که زبانش مثلا به حرکت در یک صفت هست در ذات انسانه صورت میگیره لازم نیست که چی؟ به زبان اجرا بشه الان اینهایی که به زبان اجرا کردن بر خلاف باطنشون تلینه بر این نیست که باطنشون همون چیزی هست که بر زبانشون هست درسته؟ چون زبان بحث زبان گفتار یه چیزی است. اون چیزی که در نهاد انسان است یه چیز دیگر هست محبت خداون هم همیتور محبت خداون به ادعا نیست محبت خداون در نفس هر کسی هست لیکن الا ما هستیم که منحرفش میکنیم و ما هستیم که چی ما هستیم که اون محبت و کم میکنیم یا اون محبت زیر پا میذاریم ولی یقین خداون اصل محبت خدا خودش. اصل خداشناسی و در محبت داشته با انسان ها را مفقود بر خودش کرده حالا این بحث این شوبه فقط همینطوری مختصر دیوابش لیکن بحث دلالت فکریات بر خصوص دعوته سنعتو حیث تنفيذ و ولو هي غير صفات نگاه کنید دلالت تفرّت من میتونم در سه مثلا خلاصه بگم دلالت تفرّت بر انواع توحید از نظر استدلال از مسائل علمی دقیق‌تر ما شر از لحاظ عقلی راحت یه ولا چند جلسه هم نیاز داریم چون یک جلسه دیگه نیاز داریم که الا از مسائل دیگه که میتونیم با اون اثبات بکنیم وجود خداوند مثلا از لحاظ عقل گفتم کلاس گفتم آخرین مثله گذاشتن فترت خب بس الحمدلله آخرین مثله بگذاشت فترت دلالت, دلالت فترت از دلالت فعق و قوی تره الان ما میخواد ثابت دو کنیم چطور دلالت فترت از دلالت عق و دلالت مساله علمی و سنوع توهی قوی تره. اولا انسانی که در مصیبت میفته سوار قایق شده سوار کشی شده داره غرب میشه وقتی که میخواد غرق بشه دست نیکی برمی دست به کجا میکنه به الله و ایده مثل الانسان در دعانا دعان او قائدن او قائمن فلما کشفن عنه در رو مره که انم انسانی که در مسیبت واقع شده را چه خابیده چه ایستاده چه دوان دوان الله الله به سر زبانشه همونتون قالای آیه 12 سوره یونس انسان اگر فترت اگر در فترتش خداشناسی نیست چطور مشرکینم کسانی که مرد پرست بودن و بود پرست بودن چطور در مصیبت ها میان میگن الله اللہ پس یک الله شنادی در نفس انسان هست که انسان یک دفعه احساس میکنه یه قدرت برتری هست که میتونه نجاتش بده همون قدرتی که انسان رو با این عظمت خلقت کرد میتونه اون قلواند عظیمی که این عظیم رو ساخته این مشکلات عظیم و بزرگ را زیر پا بگذاره و اون شخص رو نجات بده انسان از عظمت خودش میدونه که یک قدرت عزمایی هست که این عظمت رو برای شید چی این امواج و این دریا و این تلات می ها میدونم ها برای اون شخص هیچ نیست اون شخصی که این آسمان و این زمین و این همه ساله ساخته دیگه یک آب برای شیده نیست پس انسان در نفس خودش احساس داره که یک قدرت برتری هست احساس انسان لازم نیست که اون شخص درسه فیزیک خونده باشه شیمی خونده باشه یا ستاره شناسی خونده باشه لازم نیست که دیپلم داشته باشه سیل داشته باشه خود به خود خود به خود این چیز نفس انسان میاد دو وقت پیامبران فرستاده شدن برای توحید الوهیت درسته و لقد فی في كل امه رسولا ان اعبدوا الله توحید توحید و سلام قاطعه وحد عبودیت و الوهیت یا قد وما ارسلنا من قبلك من رسول الا ينشئ اليه ما أرسلنا من قبلك أي محمد قبل السفان برهاننا نأخذ صدي من لا نشيله أنه لا إله إلا أنا فاعبودون فاعبودون توحيد العبادات إلا إلا إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبودون أو أي بصفح سري حبيا لا أي قبيهام سيوشش سرينه. هيك نبودك بگه مثلا به فرد استدلال بکنه با مسائل منطقی فلسفی، عقلانی بخواد بیاد مناظره بکنه با اقوامش که از مثلا بگه با شما نظر تدلال داشته باشید شما باز شک بکنید شما با تلام بکنید تا اینکه به وجود خدا پی ببرید پیامبران خدا من چینی نبودن چرا؟ چون ذات اقرار به توحید رو بیاد ذات شناخت خدا در نفس انسان ها هست انسان در ذات خودش خدا ش و خاطر همینه کسی پیانبران وقتی که میومدن میگفتن یا قوم عبود الله آن عبود الله درسته؟ پس یه چیزی هست یک مقدمی یک پشت زمینه پشت فردی دارن که دارن این پیامبران به خودشون اجازه بیدن کنها رو نفیحت بکنن واداره به پرستش رو عبادت بکنن بله اگر قرار بود انسان خداشناف نبود باید پیانبران میومدن اشتلال میکردن باید میومدن مناظره میکردن از فلسفه استفاده میکردن پس چون این کاری رو نکردن پس انسان خداشناسه و اون چیزی که تعیید میکنه اولا اگر ما میگیم الان به این صورت میدیم در تایید همین مطلب دست فرستادانش نو پیانبران برای علوهیت دلیلیست و ربوبیت اگر اقرار به خداوند و ربوبیتش امر فطری نبود پیامبرانی که ترساده می شدن اولین ای که بازگو می برای امتشون توفید رو ببیند بود پس چون چینی نبوده پس انسان در ذاتش خداشتناس هست ولی این اینو می گن توفید رویت اگر بازگو نشده و توفید رویت بازگو شده بازگو شده از طرف پیانبران دلیل بر این نیست که یادی نشده و تذکری از روبیت نشده یاد شده، ذکر شده ولی نکه به عنوان اساس، اساس دعوت و لوحیته و روبیت اگر بازدو شده به عنوان اصلی که متضمن چیزی دیگه هست مثلا بالفرس فلان در سوری بقره میگه یا الناس عبود ربكم الالذی خلقكم و الالذینا من قبلكم لعلکم تستقون عبادت مقونی چون خودمان شما خلقات کادر روبیت ذکر شده ولی که چی متزمن اولوهیت یا ایوها الناس اعبدو یا مثلا در بحث صاحب یاسین ورمسور یاسین که رفیقش میگه رفیق یاسین میگه و مالی لا اعبد الذي فطرني و ایلیه ترجعون و مالی لا اعبد الذي فطرني. چی چی سبب میشه که من کسی که فترات بهم دوری ده یا منو کل قد کارد به ها دو معنوش معنو و معنو لغا بیش و اون شخصا من بهش بر میگه پس لازمه این ترخید روبوبیت چی هست؟ ترخید الوهیت اگر ترخید الوهیت خطاب قرار بده شده آخرش هم در قرآن بحث در الوهیت است اگر اقرار به خداوند و روبوبیتش فطری نبود اشخاص مخاطب کسانی که دعوتش رو میدادن پیامبران میتونستم بگن در مقابل فاعبدون در مقابل من رو بپرستید را حضر میتون ایسان بگن مکر خدا را نشنقید چرا بپرسیم اشن چرا نگفتن؟ چرا مثلا قوم ایوب، قوم شعر، قوم ابراهیم، قوم فلان و فلان همه که امران خدا منه همه گفتن این آیه. و ما و ما عسلم من قبل که من رسول الا نوحی ایلیه انه لا اله الا انا فعبدو خدا من ما طرف خدا منی و خدا من میبید که من را چرا معارضی ندانیم که بیاد نگه نه من خدا را نسلختم شبین خدا را بپرستم چرا نه معارضی پس عدم وجود معارض عدم وجود مخالف در این قضیه عدم مخالفتشون دلیل بر اینه که چی؟ توحید توحید روبیت خصوصا علل خصوص در نفس انسان خداوند گذاشته ثبت من اگر اقرار به توحید روبیت اقرار به خدا امر فطری نبود هیچ وقت خدا از پیامبرانش و از خود از خودسان از محمد مصطفی به عنوان مذکر تذکر دهنده یاد نمیکرد. کرد چه موقع من تذکر میتونم بگم من متذکرم یک امر پیشین باشه که تذکر بدم. یاد او باره یک خود قرآن تذکره و ذکره قرآن تذکره انسان را بیاد می درست بیاد یعنی یه چیزی هست که ما را بیاد پس یه چیزی بوده یه چیزی هست در نفس ما خدا،, خدا من پیانبر الله علیه وسلم فرستاده بنوان تذکره بنوان یاددهنده و یادآور کننده بنوان مذکر درسته؟ اگر نبود هیچی مذکر نبود درسته؟ معلم بود فقط معلمی رو یاد میکرد ولی چون مذکر رو یاد کرده بنوان یادآور کننده دلیل بر اینی چی؟ یک مطلب شیشین هست در نفس انسان که اومدن اینها, اینها اصلاحش بکنن در ماها سه و من ختام بحثمون بحث الزام قرآن کسانی که دچار شد که در الوهیت شدن خداون اونا را توبیخ میکنه بر احساس رغبیه آره ابو بگیر ابو بگیر کسانی که مشرک شدن خدا من میکنه بر اساس شناخت تطریه خداوند. چون خدا را میشناسه خداوند من میکنه توبیغتشون میکنه به محمد مصفح صلی اللہ علیه و سلام میگه: بگو قل من یرزقكم من السمائی و الارض چی کسی هست که رضف قول و زیتون میلتونه و من یدبلل امر توبیغت و من یدبلل امر الله خداوند من میکنه توبیغتشون میکنه شما که خدا شناس هستید و میگید که الله خالق و رازق و مدبره پس چرا واسطه قرار میدید پس چرا مورد تلاش و برترسی میکنید این آیه سیودیک و کسیوی سری یاسین بود سری یونس وجودشید شد کل من یارزق خم نه سعی این استفهام تقریری است بر توحیه روبیعه کل من یارزق خم این سؤال استفهامی کی هست که رسولی می کی هست که زنده می کند و می می اون چیزی که قرار رو گرفته در نفس انسان خدا بر اساس اون داره به ما توبیغ یعنی به ما گوشتت میکنه. شما بر اساس این اقرارتون بر وجود من اقرارتون بر خالقیت من رازقیت من باید من رو بپرسید این چیزی که خدا من توبیغ می انسان ها یا مثلا از همین فیغیه هایی که پیامبران استفاده می کردن برای گجزد امتاشون قالت رسولهم اف الله شک قالت رسولهم پیامبران در خدا به اقوامشون می اف الله شک او مگه در خدا شک؟ نه جواب هیچ شکی در خدا نیست هیچ شکی در خدا نیست پس امتی نبوده که وجود خداوند انکار بکنه پس اقرار به وجود خداوند امر فطری هست یا غیر فطری؟ امر فطری اقرار به وجود خداوند امر فطری است با توجه به فرستادن پیامبران با وجود اون مصیبتایی که مدارش واقع میشه و با وجود اقرار ابو جهل ابو لهب و دیگران اتران اینش از سران قریش خداوند اینجوری یاد می کنه از بشر که کسانی که بت پرست بیدن. اگر امر اقرار به ربوبیت فطری نبود خداوند هیچ وقت سرزنش نمیکرد و هیچ وقت ها و ابو جهل اینا تو بخن نمی کرد و نار عذاب نمیداد. اونها میپرستیدن ولی کی رو میپرستیدن بوتا را میپرستیدن بین خودشون خدا واسطه قرار میدن. ولی با این وجود مزنیم واقع شدن چون پیام خدا رو نپذیرفت چون اون چیزی که لازمه اون ایمان داخلی ایمان, ایمان قلبی بود فطری بود عمل بهش نمیکردن. کردند بهش نمی کردن. همونطور که در بحث همون یهودی بود صفیه میگه همسر رسول اکرم پدر محمد همون مسیته او سفر رسول الله هم میشناخته، قشنگ میشناخته. از خود رسول الله صلی الله علیه پیامبر خداست. ولی اینج همون میگه که به پدرم گفت که چیکار میکنه، چه چی واقفی داری و به هم گفتن که ما واش دشمنی میکنیم هر چنکی رو بر چون از ما باز زده شده. جاهای شقته، جاهای استکباره. جاهای کینه. هست. مثلا بحث ابلیس وقتی که استکبار میبینه سجده کرد، استکبار و کبره. نه خودشو کوچک میکنه. نه که قبول نداره اصل وجود خدا وجود خدا را قبول داره ولی نمیخواد حرف خدا را بفزیده این مشکل بشریت اصل وجود خدا فرستازشونان پیانبران برم به عنوان گوش کنندگان قبول دارن ولی که هوای نفس در اونها غلبه میکنه و دنبال هوای نفسشون و خوش میدن به بعد پس این استفام علاقه الله شک انتاریست به معنای نفس و این انکار بر هست که این نفی را قبول دارن یعنی قبول دارن که هیچ کس بهل از نیست یعنی جواب چینینه که در خداوند هیچ شکی نیست یعنی اون کتاب پیانبران چینین بوده به اقوابشون در خداوند هیچ شکی نیست شما هم میدانید که خداوند هیچ شریکی ندارد ولی که شما جهد و انکار میکنید و خاطر این هست که من دارم این چینین توبیخ کنان بهتون مخاطب قرار میدم قالت رسلهم اف الله شيقلا كبعنوان جمعشون تمامی پیانبران چه بعنوان فردشون از رسولان صلی الله علیه و سلام گرفته تا آدم پس این آیات دلالت بر این داره که بشریت هیچ شکی در وجود و اقرار به خداوند ندارن پس انسان ها خداشناسند انسان ها خدا را می میشناسن ولی که وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قضبته يوم القيامة وما قدر الله حتى قدره دو جهة در قرآن بيان شده يكي در سوري عن عام در خدا من از اينا بعد از اين كي بحثت في انبران ميشه ابراهيم و فرستان فلان و فرستان فلان ابراهيم وجود بندگان چقد ناشوكرا ناصفاسا بعد میاد میگه خداوند و ما قدر الله حق قدره. قدر خدا را ندورست. اونو متایی که نابود شدن. قوم سمود و قوم لوت و هر قومی که بودن نابود شدن را را را. قدر خداوند نشده. و اینجا هم در سوره زمه را ما قدر الله حق قدره. بعدم خداوند نشناسی قد نشناسی بندگان را یاد میکنه. با وجود که میگه والارض الارض و جميع قطعه و سماوات و مطریات با وجود خلق و زمین با وجود افسردگی این همه پیامبران برای دلالته ارشاد با وجود این سنتی که شما میبینید صحیح بخاری و مسلمین همه علما جان خودشونو داده این همه قرآن و این همه تفاسیر این همه تفاسیر قرآنی که نوشته شده این همه زحمات این همه مدارس دینی این همه نمیدونم تلویزیون و رسانه ها و اخبارها و فلان و فلان نوار کمه سیدی که کتاب کمه چی کمه ولیکن کی هست که خداشناس کی هست که قدر الله رو بدونه انما يخص الله من عباده العلماء علما تک خدا تک کسانی که دنبال علم کسانی که دنبال تصرفاتشونن کسانی که دنبال اصلاح فطرتشونن خودشون مباشرة به خدا می ولی ولیکن کم از اون اشخاص که چی قدر خدا رو میدونن و دنبال خداشناسی باشن دنبال این باشن خودشون رو به خدا نزدیک بکنن انسان مشکل در انسانی که خودشون نمیخواد به خدا نزدیک بکنه دنبال مسائل پوچی هست دنبال مزایلی که جزء حالا از جهتی دهول حددید حرف های بودال ها چرا موسیقی باشه چه ترانه باشه چه نمیدونم فیلم ها و سریال ها که پر از دروغ و پر از فحشا و منکر و پر از مبتذلاته. انسان خودشو محرف کرده. خودشو رو کرده به این سری این و به این سری به این سری چیزهایی هایی که انسان رو خدا شناس میکنن. به خاطر همینه که خداوند این چین این سخت وارد بندگان میشه. و این آیات اگر خوب در اشتراق، اگر تمعن و تفکر داشته باشیم انسان قلبش واژگون میشه قلبش دگرگون میشه وقتی خداوند سرنوشت میکنه و ما قدر الله حق قدره من دیگه قدر خدا رو نمیدونستم یعنی وای وجوز در کثرت انسان خدا گذاشت خداشناسی خدا کتاب ها گذاشت پیامبران فرستاد این همه چیز ها ولی وای وجود انسان نماز و نیست، وقت است نیست، شرع دنبال طلب العلی دنبال تفکر در قران است چند بار با تفسیر قران چند بار دنبال نکست صحیفه بخاری رو کردیم؟ چند بار صحیفه مسلم رو خوندی آیا خداوند فردا خزنه شمون نمیکنه گوشمون نمیگیره فردا که چرا دنبال صحیفه بخاری نبودی؟ چند بار این اقوال بگم من همینطوری وحنش کردم بر محمد مصطفی دین همش ارزشمنده دین از طرف خداونده چه قرآنش و فرنتش. چه قرانشه سنتشه چه لبش چه قشرش ما دین رو تقسیم به پوست و هستاش نمی کنیم. پوست هستاش از طرف خداوند محترمه چون لبی مغزی هستی که قران و چون طوسی که سنت مصطفی صلی الله علیه و آله چون ریش گذاشتنش چه اون, اون, اون پیراهن کوتاه کردنشه چه موسیقی گوش هر چیزی که هست از طرف خداوند اومده مقدسه و محترمه آلا ما آیا قدر این مقدسات رو فهمیدیم آیا دنبالش بودیم واقعا از صمیم قلب شما خودتون فکر می‌ذارید در یک شبانه روزی که 24 ساعت وقت دارید چقدر وقت خودتون رو دارید دنبال اون چیز منزل اون چیز مقدسی که از طرف قضابن بنوان یه چیز محترم آمده آیا ارزشش رو فهمیدیم؟ شما قدونه در این آیه بذارید این فطرت و این احادیث و این آیاتی که بیان شد فکر نکنم که در این مسائل شک باشه و خاتمش بحث شک اف الله شک آخرش غیر ممکنه که شک باشه اگر شکی نیست پس چرا قدمش ناسه؟ دنبال نیسیم، چرا دنبال دین نیستیم چرا دنبال تدین نیستیم دینداری نیستیم چرا دنبال استفاده از وقتمون استفاده از فرصت هامون؟ از این نمیرا بسائری که خدا من بهمون به داده مجازیل خلاصه شده در شیخ فلانی و فلانی و علانی در دانشکده مدینی و در دانشکده فلانی و فلانی دین در اینها خلاصه نشده هر کدوم از ما میتونیم را دنبال طلب العلم باشیم همون نمیذارم شیوخی که هستن نوا هست. همون کتاب کتابایی که هستن فقط مدلمون بکشه. فقط ما این قدر, نش... قدر شناسی را در خودمون انگیزه سازی بکنیم. شکوفاش بکنیم. این قدر... این قدر شناسی. این کتر در نفس ما هست. حب خداوند. حب دین خداوند در نفس ما هست. ما این کارش نمی کنیم. لیکن ما باید تردرشش بدیم. ما باید بهش تطریقاتی بدیم. باید بهش اهمیت ها و مسئولیت ها بدیم. که این مسئولیت ها ازش به نحب احسن استفاد جلو به خودمون بذاریم صحیح بخاری و مسلم چه قدرش استفاده کردیم جلو به خودمون بذاریم خب چه قدرش استفاده کردیم این چیزهایی که از طرف خود خدا بنده چیزهایی که خداوند خواسته ما مقدسش بشمونه پس اینها جز علامات سوالی هست که تمامی طلاب علم واجلا به خودشون بذارن و تکیف و فرنی و علانی نکنن خودشون باید مکتفی باشن خودشون باید از وقتشون استفاده بکنن، خودشون باید قد شناس باشن و وقت بذارن برای شکوفا کردن انگیزه هاشون، شکوفا کردن فطرت خودشون. باید پرورشش داد. این فطرت رو باید پرورش داد. اگر پرورشش ندیم این ما مثل اون که هست ها، اگر گوش بریده نشیم، چشممون از کاسه بیرون نیارن، حدّاقل خطشهای بر جسد این حیوان و جسد این انگیزه، بر جسد این فطرتمون واقع میشه. شبهاتی در دلمون میاد سردی میاد، نمیدونم دوری از دین میاد، خستگی میاد، نمیدونم افسردگی میاد، همه این ها میاد. این خدشه ها در صورت بیاد که انسان قدرت من نشه. انسان باید خبی باشه، از این فترتش به نحن بحثاً استفاده بکنه، پربرشش بزه، تا این که بتونه مؤمنی باشه که قدشناس خدابن و دین خداوند باشه. سبحانه که الله سبحان الله سبحانه که صلی الله علی محمد و علی محمد.